الله و آنه قیبین و قاهرین و معصومی و لعطا داریم و داریم مجمعین اللهم فرمه جمیه موشده آرخمنا و رحمتی که آرخمنا بحث درباره برای تحبیر انتصال اجمالی یا تأثیر این اجمالی در مقام سقوط و انتصال بود از کردیم که مرموم استاد بحث رو به این صورت شروع فرمودن که یک بحث تمکن از انکسال تفصیلی هست یا نیست. در مورد اینکه نباشه خب همه اشاره نداره به انکسال اجمالی باشه. اما در صورتی که هست فرمودن به این که شوری داره. اونم وارد بحث شدن یکی اول بحث تا... بحث به مسائل توسلیات بحث تهارت و نجاست و این جور چیزا بعد هم بحث عقود توی بحث و حبوب همون اشکال نداره امتصال اجمائی با این که انسان تمکن داره مثلا تمکن داره که بدون دانه معتبر در نکاح مثلا زربشتوست نه انکهتو من ازالک هر دو سیغه رو بخونه هم زربشتو و هم انکهتو مراجعه نکنه با تمکن از امتصال تصیب دیروز ما یه توضیح راجع به کلام ایشانو اون چی که ممکن است با امان مناقشه عرض کردیم حالا تتمه کلام البته ایشون در صورت تعبود یا صورت مختلفی اومد در که ما همچی دو صورت اجمال طول تفصیلی که ایشون قرم بودن که ای نظر ما تأثیر بزار میز نکات اصاسیش رو عرض میکنیم که انشاءالله رو کمش. اصلا که اولا نسبت به مثل توسلی یا یا مثل مثل تهارت نجاسه یا مثل اهود تعبیر برس که ایشون فرموندن انتصال اشمالی دیگه حتی این خالی از این نوع تسامح نیست یا مثلا تعبیری که ما بالا هم جامدیم احتیاط مثلا احتیاط کنه سیداد به هر دو جور بخونه اولا چون کلمه احتیاط یعنی اتیان جمعی محتمرات به این معنام این احتیاط خب وقتی که در یک مسئله مثل انتصال اشمالی با قدیشون عقود مخالفی مثل شیخ انصاری باشه با وجود مخالفه شیخ انصاری جو احتیاطی سنّت لاغرا ایجاد شده این خلاف, خلاف احتیاطی وقتی مثل مرحوم شیخ انصاری میفرماید به اینکه تکرار عقود درست نیست و مضره به با تنبیه با جذب با جذب میگه در واقع انشاء سازه با تنجیز در انشاء نمی سازه خب این سبب احتیاط بارش مشکل من ترجمه میکنم صورت مثلا بگیم کلمه امتصال هم استلاحا در جایی میشه که تکلیف باشه و انسان عملی با انجام بده که اون معمول به روی معکیون به منتبه باشه استلاحا این دیگه امتصال اینه امتباه معمول به روی معکیون به این روش یه امتصال استلاح امتصال تبر اون چی که خواسته انجام بده در مثل عبود انتسابی مطرح نیست حالا شاید مثلا شو اوقو به عبود رو گفت اوقو بودن یا علیت در مثل عبود و عرفیه است یا شرعیه یا حالا به منزله سبب در مثل عبود انتسابی مطرح نیست اصولاً ما ندیشو ذکر می انتسابی یعنی اصطلاحات انسان شخصیته به طهارت و این اینکه تاهر هستی یا نه یه تضمیر به انتسابی حالا مثلا بگم تکرار عمل یه چیزی اکیان جمعی محتملات یه چیزی و مزادتا اصولاً به نظر ما صحیح این است که خود کلمه امتصال هم دارش تعملی بشه به این عنوان که خود امتصال اصولاً طبیعتاً از مقولات سرکل وجوده ما صادران شداران امس بعد از مقایی چه حالا مقایم قانونی چه غرفی اینها اصولاً در تقدیر سرخل وجودند یعنی فقط یک وجود که حقا پیدا وجود ثانی و ثالث نداره مثلا مفهوم ولایت در امور قانونی ولایت مفهومی نیست که قبیل وجود باشه که دوم و سوم و چهارم داشته باشه مثلا اگر مجنونی هست کسی محمد علی برشه و قراردادی نمی تونه ولی دوم ولی سوم دو ولی چهارم معنا نداره محصولی هست بدون متولی خراب شده کسی در متصدی شد این دیگه تمام شد جای ولایت دو با مسئله اصلا ولایت ولی ازا این بحثی که آمی که مثلا ما در ولایت فقیر با تعدد فوقها چی کنیم علیه هر فقیر بیاد متعدد باشه ما در اونجا طبیعت ولایت طبیعت صرف وجود اصلا قابل تکرار نیست اصلا نمیگه تکرار نمیگه انتصال هم مثلا می کنیست بحث انتصال متعدد شدی، انتصال هم تو پول وجوده این که می گنه انتصال این تسانوهه از الان انتصال معنی بده مونکلی معنا معنی چون اگه آب بیار آب عدوان امتصال محقق شد دو رکbee آب عدوان اینه که امتصال مید. دو امتصال این بحث اصولی رو سادقا متعرض شدیم در اصول دارن امتصال بعد امت نو از که انتصاب را داریم، اصلا محکومش است. محقق نمیشه. چون انتصاب در لغت در استلال قانونی در قوای اتباع سوامی از قبیل سرکور وجود است. سرکور وجود وجود دوم سوامی ندارد، لذا از قبیل وجود سومی نیست اونجا احتیان عمله اصلا اگر داشتی دو، آورد انتصاب بعدش انتصاب نیست. اصلا مفهومی انتصاب بعدی انتصاب. اصلا لذتی مفهومی. خب دقت بکنیم اصطلاحات داری با هم کنیم لذا دقت بکنیم در ما اکیام مکرر احمد مثال بگیم الا اجمالی خب اشکال شیخ در حقیقت از این را هم میشه تحریر پس الان فرسان احمد تو اوگود که امتصال محرم مید. شما اگر اون چیزی که اوگودی سبب بود احب بود محقق میشه سبب نبود احباد بهش محقق نمیشه یه امتصال اجمالی من رویم اجمالی چی؟ اصلا لحظه امتصال امتصال اجمالی یعنی چی؟ این یک لحظه نیست که خودش لحظه احتیاط معنا داره. احتیاط مثلا احتیاط جمعی محتمله خب حتی من داریم می فهمون آقایم که احتیاط درستن که احتیاط که احتیاط یعنی اگر شما می در مثل اقود بگیم جایده اجمالا همجام مثلا هر دو سیخه رو بیانید با اینکه میدونید یکیش دوسته و راه هم دارید اگه دفعه راه ندارید؟ نه راه هم دارید رساله رو باز که این سیخه باز باشد اینجا در حقیقت اکیان برگرد اکیان محتملات صدق اکیات هم براش روشنگیست این مقلودی مخواهیم به نظر ما به هم خورده چرا؟ چون اگر احتیاط احتیاط و باشه خب چیه که باطل ایش رو احتیاطیه بگیرن احتیاط درکت که احتیاطه و از هرگید ما یک عنوانی به نام انتصال اجمالی نداریم یا بگیرن احتیاط محتملات عنوان باید دقیقی باشید یا بگیرن عنوان احتیاط یه عنوانی باز پیدا بکنه ما انتصال اجمالی انتصال طبیعتش یک طبیعتی نیست که تکبر رو پیدا بکنه نیست و لغا ما اسمشون می دهیم مثلا احتیاط این یک ای که من اول عرض بکنم و گاهی اوقات اصلا اگر خوب دقیق بکنیم یعنی اگر انسان دو تا با... دو تا چیز باشه که هیچ واقعا سبب باشه هیچ واقعا نباشه و امکان داره رفع جهلش ما بیم میشیم بحث بکنیم که گرنه هرگز انجام میاد واقعا در اما فرض کن آلو، اینکه بعضی یعنی واقعا مثل اینکه دو تا تو خلیه ما میاد، دیگه میشی به بعضی شهر، دیگه یه تو ما بیم درم حال در باز میشه میشیم که یک که بکنیم یک بار، اما این یه هرگز میشه این کار، اون انسان چجوری در باز میشه که یه احتیاج نیست که هر دو نشستون به کنتور برق بدن این چه نظری یعنی و اصولاً بحث کردن این مسائل به نظر من واقعا از مسائل تقیه عمره و این سه حالا کاردان کردن در نیه اون مشکل گیری تو اعتراض قانونی توی مسائل واقعی اگر انسان جمع بین دو چیز بخواد بکنه که یکی چیز سبب یک سبب نیست و راه شناسایی هم داره خیلی راحت میشه تشخیص بده بگه یعنی که از اصول و اغلاییست خب یا بگیده از روی چهر بکن درست ایشان بذاریم یا احتیال جمعی محتمل هستی به نهنمان میاد که خیلی بسیار پی نقصه اصلا درست نباشه حالا غیر از آثار اینکارا موجزی باشه نباشه که ایشانا بر توضیحاته که پرزید به هر حال بعد مرحوم استاد وارد بحث عبادات شدن و در عبادات هم تقریب یا میگن مستقله مثل که نماز و یا جمعه مثلا یا مستقل نیست مثل که شکل کنه سوره واجبه یا نه یا مثلا شکل کنه که مثلا سراس رو با سین بگه شما میان ساد اگر مقصود بشه سیم خونده میشه یا با ساد بگه بعد کتب پرسیم بیرین که پنن موجوده مراجعه هم سهله با که مراجعه نکنه دوباره بگیر بعد گاهی احتیاط مسلزم تکرار هست و این مسلزم تکرار نیست این هم یک نکته بعد گاهی احتیاط با احتمال امر امر شوشه یعنی لکه مردده یه دفعه احتیاط بدون احتمال امره مثلا میزونه یا واجب یا مباهه بازم هر دو انجام بده مردده ما بینه همه ماست هر دو انجام یه دفعه یا واجبه یا مستحبه حتی این صور متعدد داره مرموم صور اسم بودن من به اینکه این صور رو نقطه های شو بگم اون نقطه تنمیش رو عرض میکنن یه خودتون تقریح من در این صوری که گفته شده در کل این صور که درانه امده این وجوب است، استحباب وجوب عباه هست مستظم تکرار هست مستظم تکرار نیست مستقل، مستقل نیست تقریبا میشه گفت که دو تفصیل نسبتاً اساسی هست و یه قول به اطلاق در صوره تمکن محله. یه قول به این که اصلا جایز نیست از تمکن مطلقه یه قول به این که مطلقاً جایزه که خود مرموم رسال قرار کردن یه قول تفصیل مرموم نایمیه ایشون میگن اونجایی که مستزم تقرار جایز نیست اون که تکرار تقرار نیستش بادن اصلاحاً اتیان احتمالی احتیان محتملات اگر مسترزن تکرار بود اونجا اشکال داریشون اشکال میکنن اما اگر مسترزن تکرار نبود نه یا قول هم هست که مطلقا درست نیست اصلا مطلقا با تمکن از انتصال تفسیری احیاط کلن در جمعی اصوارش درست نیست این قول برایش ادعای اجماع شده این قول این هم نیست که شیخ از قوانه معم میکنه لیل اجماع علو بوسلان عبادت تارک طریق الاشعار فرق مرابینه تارک طریق الاشعار و تقلید یعنی رو به احتیاج بیاره این تارک طریق ای الاشعار باشه عبارتی سر قوانی لله اجماع علو بوسلان عبادت تارک طریق الاشعار و تقلید از زمان شیخ زنده صالح در هوای ما بناشون به جواز مطلقا آقای اول خوام اینجا تابع شیخه مطلقا جایده مرزوم نایمی تفصیل ما بین تکرار و غیر تکرار میدن این اقوال روشن شد این شد چند تا سه خود یه تفصیل دیگری که میشه تقریبا گفت اینو معتنابهه حالا تفصیل مثلا زلمی باشه غیر زلمی باشه نه تفصیلی که معتنابهه که احتمال امر باشه یا نباشه مثلا دوران عمره این وجوب استحباب بگیم احتیاط شد چون برحال اونجور عمری هست احتیاط خوبه. اما دروران همه بین وجود به اباهه چون یک طرفش احتمال که عمر نباشه اصلا به هیچ جمعی عمر نباشه گروشن شد پس مجموع اقوال به احتمالات چهار تا میشه گفته نشده چرا میشه در, باشه... در شوی موضوع در گفته نشده. اما خب میشه گفت از کلام اونایی که گفته شده همین سه تا است مطلقاً جایزه که ازم از زمان شیخ به بعد اینه نظر اینا هم آقای خویی منو پی رساله عملیه که نوشتن دیگه این رساله عملی همه اولش نوشتن که مکلف یا مهتاد از یا موشعل از جو مخالف نه همه جایزه بوده خصوصا که تو رساله عملی نوشته اینا مطلقاً جایزه ده. قبلش شیخ است که از زبان قوانین اجماع داده شده که جایزون صحیحه چون ها قصد و جزم و نیت و اینا میخواستن گفتن اشتهاد دارون با تمکن از اشتهاد و تقلیب نه شهر که داران قابل هست و جواز دیگه چون جواز احتیاطه مگر در معاملات نه در عبادات داریم هست روشن شد اون احتمالی که توی این اقوال یعنی توی این سوار مسئله احتمالش راجع یعنی میشه مطرح که اینه که اگر موجوده ام على کله حاله مهرز باشه بگیم احتیاط میشه اما اگر موجوده ام على کله حاله مهرز نبود مثل درام دین وجوب اباهه چون موجوده ام على کله حاله مهرز نیست بگیم اینجا احتیاط معنا نداره آشاره چون یک طرف ایش هست بگیم مثلا نه احتمال دقیق این مجموعه اقوال ای و, و اما نکات تنمی یعنی کسانی که جایز نیست مطلقا اشکالاتی که هست همون قصد وچه دیگه قصد وچه ها و محسوس هم کسانی که در قوام عبادیت رو به عمر میدونن میگه شما عمر در اینجا ندونی احراز عمر نمکنی چطور انجام میدونی بعضی اون گفتن اگر امر جامعه مثل حجوب استحباب بدون کافیه دوران هم بین حجوب اقاهه میشه این بخاطره اون شبهه قصد امر و قصد تمیز و قصد ورش در اینجا بر اصلا از عمل به اصلا منتفی اشکال اساسیشون اینه و اون هم در حدی از مواردشون هست که ذات عمل فی نفسه حس نداره حس این عمل با اضافه بشاره ای که عمل باشه این هم اشکال از در بحث سوالشونه نه در هست این اشعار دوم در کلام است. اشکال انده مرحوم نائینی تکرار لعبه یعنی مسخره است لعبه مولاده. خب شما را ممکن است سوال بکنید که نگاه کنیم به اشعارن یا تعبدیات نماز جمعه واجب واجب نماز دو. شما نگاه کنیم به رساله نه به ادله مراجعه به هر دو رو بکنم خب این لعبه با اینکه امکان در رساله باشه ببینیم مقلد شما چی گفته مرزن شما احتیاط میکنیم ایشون میگه تکرار رحبه به همه موقعاست اشکال معروف نایمی این که جایی ولذا جایی که مستلزم تکراریش رو میشه بیداره. اون احتیاطی که مستلزم تکرار این مجموعه اشکال ها خب جواب اینها هم دیگه واضحه یکی از اول دو اونجایی که گفتن قصدرش باید قصدرش قصد مطبع نیست مدعید بر قصدرش نه تا زلگرک تا ازش هم با دلش باشی با عنوان اجمالی کافی برایش بیه که از من میدونه واجبه بیه این مقدار اکتفا می کنی هست تریزن دلبرد آوریش این که هرگز بعد با هم باشه اون هم دلبرد آوریش می اونی که ما داریم عملی رو انجام بدیم اضافه بدیم به مولا بعد با اون شما نمیخواد کافی خواد کابی رو امر او قصد این هرکنی مخلکت عمل در امر باشه. مسئله تکرار هم به انواع مختلف جواب داده شده یکی اینکه لعظ به امور قسریت همیشه اینطور نیست که هر وقت ما تکرار کردیم لعظ لازم بیاد مثل این که کسی وقت میشه شما ازتون یه نفر از جیغ بلند میشه این بلند شدن انرژی اون ممکنه از احترام باشه ممکنه مخاطب به بیهون ممکنه کار داره ممکنه کسی زنی بزنه علل مختلف داره یک نواس نیست جزء امور قسریت اگر به قصد احترام بود خوبه اگر به قصد تعظیم بود خوبه پس تقرار خیلی نفس لعب نیست اگر به قصد لعب بود بده اگر هدفش لعب و مسخره و سخریه مولا بود بده محفوظ کلام هم دیده که ایشون داره تقرار مثلا در یه احتیاط خب احتیاط که با لعب بمیسازه این باید وقتا خصوصا منطرف میگی آن اون رایی که خواهد به اجماع کنن از باید وقتا میگن این تقرار خوش دست دست <تصفيق> نه نه، <بحطالوش. تصفيق> نه میگن تکرار، این تکرار یک عمل فی نفس ملازم با لعن میز حرف اینه. چون لعن از قصدی هست مثلا با قصد بکنه شما سوال اینه، اصلا خود تکرار یک عمل فی ملازم با لعبه نه، استهزاء این نیست. لعن اگر من دوباره انجام دادم منجر دوبار دوباره لحبه لحبه بازی باشه باشه. باشه. با لعب به امر مولایی مسخره مولایی بادیه کی. اگر با فرض باشه که داره، بدون فرض هم لعن اشاره می‌کنم، لعب با فرض میشه. از علامیر نه، نمود، بازی کنم میگه و ها بایده عشقا یه رفته خب پس خب بدار خب احتیاط میکنه <تصفيق> <تصف> خب شب شو... میگم دارم از اول دوستم خب از اول عباد... خب میگه لعب میگه میگه خب میگه لعب قصد میخواد این داره احتیاط میکنه قصد عباد... این عباد... احتیاط با قصد لعب نمیشازه خب خود کار لعبه چرا؟ قصد بایده کارمه لعب باشه لعب بارونی این حوضه ها بیهوده ممکنه به خاطر چی؟ به خاطر این که راهی تفسیری داره؟ مثلا شما ممکنه اما لعب نیست مخواد مزخره کنه مخواد داره احتیاطی کنه خوده به اشکال روشن شد که لعب لعب امر مولا از عناوین قصدیت اینه قصد با توش باشه نه خود تطران مسابقه با لعب نیست چرا؟ ن لع ناموشو لا لا ببین بازی کنه فوتبال باكه بازی نمی‌کنه این لا یه یه ملاحظه لعب به مولا من بازیش گرفته من لعب به امر مولا مثلا نائینی منظورش اینه که میشه تحقیق به رطالار کردن لعب به امر مولا خب همین هر اینه اونا میگن نیست ها نه لعب میشه او ده، ده، نه اینا میگه ایشون دارن میگه من رجاعن دارم انجام دیدن که این واقع باشه. نه لعب بازی کردن خارج بازی خارجی خب معلومه قسطینجو تو فوتبال بازی، به امر مولا. با این خیلی به امر مولا. بعدم اشکال معروف دیگری دیگر دارن که برپرزم لعبه رحمه موضوع باشین چون در کیفیت امتصال این اصل امتصال این ضربهی خود امتصال نمیزنه دوسته تا اشکال به مرحوم ناینی در این جرد شده و یک دقیق دیگر این باید هم رفت بگم اجماع که اجماع هم نماده اجماع هم همون اجماعی که در به نماده اجماع هم خب همون جوابی که همون و و و و و اشکال چی بر... میگن یکم کاشی کاش از قول امام میزه میشوه، اشکالی دیگه همشه. شده استاندار که یه استاندارد بشه، دیگه مخالفالا. هم که اینم مسئله اون، یکی دیگه هم مساله، چی اشکالی کردن قصد امر یا مقصدم ام را میخوایم احتمالش هم بگیم کافیه و به اصطلاح فقط ما اتیان عملی رو بکنیم به اضافه اله مولا. این برای تعبدیه اشکالی نداره. رو اضافه اضافه رو بله، اشکال همینه که مضاف رو ما اضافه بدیم. و لذا هم ما قصد قربتینا رو باید برگرده به هم من نیتونم بگم تقربه الله با این کار پیدا میکنم <تصفح> تا داشت تا او نیاد یا بگم من خواب این کار انجام فراره ان النار فراره ان النار بدون امرو نمیشه قربتی تقربه الالله بدون امرو نمیشه لذا ما در بحث بودشت هستیم تمام اناوین قصدی رو برمیدن به قصد امرو این خلاصه اشکالی <تصفح> شما حتثی قسم امر نمیگه میگه نه ایشون که برای عبادیت ما قسمه قائم نمیگه میگه امر نه خود من که توضیحش ارزم نمیزنه این هم راجع به اشکال این قسمت پس در مجموعه شواهر احتیاط یا به تعبیر آیان انتصال اجمالی که در طول انتصال تفصیلی یا در ارزشش آیانی که میگن در, انز... در طوله چند تا اشکال مطرح کردن اون آیان جواب دادن به همین ترکیلی کرد. هست از کنم که البته این مقداری که آیون مطرح کردن در اشکالات همینی سه ذکر کردیم یه اشکال هم به طور کلی ما سابقاً کردن گفتیم و حاصل که خود احتیاط را با قطع نظر از این تو مسترزم تکرار نباشه، یعنی اون حالت تربیم یعنی حالت اینکه که انسان اطمینان نداره من انجام میزم بالاخره یا این درسته یا اون درسته خود این حالت خود این حالت اصولاً در زندگی انسان یک تولید امراض نفسانی میکنه حالا غیر از اینکه که جهات خارجی هم اشکالی داره که عرض میکنم خود این حالت حالت محروبی نیست و معدیه به حالت وصفات به حالت تردید. یعنی به عبارت اخواه منتحی به یک نوع امراض روحی و معنوی میشه ولی موجب تکرار نباشه، ولی قصد وجه اشکال قصد وجه تمیز نماشه نمیدونه سوره واجب یا یعنی نمیگه حالا, حالا, حالا میخونم زندگی انسان رو اصولت یک زندگی مشوقی میکنه اون زندگی معنوی انسان روحی انسان رو یک زندگی مشوقی میکنه و بنابرای این که دیگه صاحبه هم تحرس کرده مثل مرحوم استاد قبول فرانده به اینکه ما قادر رو در معالی رو احکام جاری بدونیم. گفتیم این معالی مقام انتصاب. یعنی اون چی که در نظر عقل حسنه بگیم شارعم هم او امر کرده. و اون چیزی که قبیله تو مقام انتساب نه تو ملاکات. ما نه مقام انتساله معالیه. گفتید معالیه. یعنی اگر عقل خوب دقت کنه، اگر عقلا گفتن که آقا این منشأ میشه برای اینکه شما یک نوع مقتله و امراض روانی بشی یه نماز میخونی نصفش واجب میشه و یه همچین شک داری اون چی مراجعهش مشکل نداره که رساله باطنی میفهمه این دیگه و شوشاج سرطان پیدا میکنه زندگی باید خراب میکنه به نظر ما این مؤدی میشه به یک نوع فساد در زندگی بحث این تکا و لعب و معلو این هر قا این مزارش به مراتب بالاتر از لعب عمر و عمر مولایی هر باید. اون با اصل اینسان انسان شده حالا اگر راه بسته شد راهی نداش نمیشه تشخیص بده یک مطلبی است اما با تمکن و با امکان اینکه راه داره و میتونه راحت تشخیص بده یه رساله باز می‌خونیم همه چی بکنه کنه من مداخله ضروری واجبم واجب نیست این رو رد辩 بخونه اون یکی رجاأن بخونه خودش معلی به یک نوع امراض روانی میشه غیر این اشکالاتی که آن اون گفت که مستلزم تکرار غیر از حالا مشکلی مشکل لعبه نرمولا که البته لعبه نرمولا من هم بینه نیستن که لعب باشه با در نظر گرفتن این تمکنش اینایی که میگن لعب با اختیار منافات داره با جایی که تمکن نداره اما جایی که تمکن داره برید نیست در اوردی لعب حساب بشه برنامو خب راز داره باز می‌کنه چه دو نظر انجامی رو چند تا لباط تنهج ظاهرو مرتب چهار مرتبه نماز میخونیم یکی شهار است انصافا قیل از این حالا حالات منظر اغانی ایجاد می‌کنه، قیل از اینکه که و عمره قیل از بقید هم نیست که در نظر عرض با تمکن با این خیلی با این حیثیت با حیثیت تمکن با عنوان لعب حساب میشه و عرض هم بیگم چطوریتیتی هم میگم خدا رو بخواهی بله. و قیل از این رو شاید که میخواهم تمام بکنم به کلی ما سابقاً ارز کردیم احتیاط اولا این تغییر انتصال اجمالی شاید درسترش احتیان جمعی محتملات باشه اسمش هم احتیاط گذاشتن مشکله من سابقاً توضیح هم ارز کردیم ما چند جور احتیاط داریم باز موجزاً تکرار میکنم که توضیحش هم سابقاً گذاشت و بعدم خواهم. یک تکرار احتیاط به مختزای عقل نظری ما اسمشو گذاشتیم و اون این است که انسان جمعی احتمالات انجام ده یه سو در کلمات این است از این کار فقط با عقل نظری در میاد عقل نظری اینه حساب جمع سفیر دیگه میگه در مسئله ستا احتماله کنم با سو بار انجام دادم هر احتمال باشه حسابه میکنه این حسابه احتیاج به مناط عقل نظری دو احتیاط به مناط عقل عملی در عمل عملیه حالا ارجاعش به ظلم میشه و حسن میشه به قبضه ظلم میشه یا به مسئله استکمال میشه کمال میشه هر نحلی که ما ارجاع دادیم در اونجا دیگه بحث احتیان احتمالات نیست اونجا باید عقل تشکیم تو این کمال انسانیه. لازم نیست احتیان محتملات توش باشه اصلا ممکنه به اون محتملات هم انجام نده راه دیگه بره. مثلا یه مریضی که سخته فکرش سه تا تایید می‌بره هر کدوم یه چیز میگه این دوا رو بخور خب اون مختصای هر نظری هر دوارو بخوره اما مختصای عقل عملی گویا موقعی هست که این شلوغی بوش نکنه تیم پزشکی تشکیل لجنه طبیعت تشکیل سه نفر نفر علم و ادراکش رو بالا ببره دیگه یه چیزی کنترل نمحسوب بگیره سعی بکنه حساب به ال واقع بیشتر بکنه با به واقع بیشتر ارتباط پیدا با کمال بیشتر ارتباط پیدا بکنه ای کسی نماز بخوره وجی حد با بدونه بدی کشیه اونی که و مرتضای عقل عملی اینه اونی که حسل داره اون امکان جمعی و محتملات نیست اون نظریت نظری اشتباه شده اونی که مرتضای عقل عملی در حقیقت احتیاطه یعنی اونی که حسن باشه موجب لذا ممکن است هیچ کدام از اونام نباشه لزومه طبیعی تشکیل بده سه نفر سه نفر دکتور اصلا که این ها از اون نفر چیز دیگه بگم به اون سه تا بزهر لذا ما یک احتیاط به مختزای عقل عملی داریم که احتمالا احوک دینو فهتت لدینه ناظر بی اینه گفت دقت رو الان تو علمان ما شده احوک دینو فهتت لدینه یک یعنی احتمالات انجام بده من اینشالله خواهد بحث کنیم که در که جاش اینجا نیست سابقا در دور اولم مثلا ما همچی چیزی که احطیان جمعی محتملات که به عقل نظری احطیاته دلیگ بر حسن شده به مثلا نه عقلن نه شرح اینی که میان لاریدید که حسن احطیات عقلن نه شرح این همچیزی مورد به در انابین محسنه نیست انسان احطیان جمعی محتملات بکنه از صورت اول بسنم و در شده حالا از از این یه چیزی من بگم شد مورد شما با این مثلا من باشه سه من یکی به مختزای عقل به مختزای اصل عملی است شباه نشه پس احتیاط به عقل نظری احتیاط و مختزای عقل, عقل عملی احتیاط به مختزای اصل عملی که اینجا که اصطلاح انتصال رو کار برد غالبا ناظر بینه بی انتصال احتیاج به مختزای اصل عملی ما از اولا ارز کردیم در اصول همیشه قاونه به تنظیر حالا تنظیر یا به لحاظ خود حکمی ها به لحاظ موضوع یک نوع تصرف به ابداع ما احتیاز به مختزای اصل عملی اینه اون ریشه ارفیش اینه یعنی ممکنه است اغلا که حکم میکنن یه ریشه داره اون ریشه ارفیش رو باید اون ریشه اغلایی شو, شو پیداید اون ریشه اوهلای اینه که اوهلا اینجوری هستن اگر در یک جایی مثلا یک مقلبی بود و نتونستن به تمام حدود و خصوصیات او رو تشریف بدن می میان در اون چیزهایی که او وجود داره مثل همون ابداع صورت و ای که سابقا از کردیم میان ابداع میکنن اما احتیاط در مقام سبوت تکریف میدونه یا این واجبه یا اون واجبه صورت رو ابداع میکنه در اینجا توضیحش گذاشت در احتیاطی در مقام امتصاله وقتی که تکلیف روشنه تو مقام امتصال یا مقام تصویر و انتباق نیمه مقام امتصال باشه اینجا احتیاط حقیقت احتیاط در مختصای اصل عملی این از کنیات نفس ابداع عمر میکنه و رضا به نظر ما قصد وش قصد, قصد وشی که قصد هم مقوم عبادت به عبادت مدونه عمر نمیشه نفسی این دو جور امره یک امر واقعی که شاره گفتن اما صبح بخون یه امر ادعایی که من نمیدونم من درست میکنم مثلا هر چونه احتمال میدم واجب باشه احتمال میدم مستحق باشه احتمال نام واجبا نا نماشه حتی نفس من یا طبق یک زوابطی خوب درست اونجا هم زوابط بود اینجا هم زوابطت ساهمه میکنم تعبقی یک زوابتی نفس ابداع آمر میکند. و از در این احتیاط همیشه از این ابداع باشه. خوب دقت بکن. تا این ابداع نباشه نیستم انجامش بده. لکن این زوابت نصف زدکش میکند. و چون این مطلب ریشه عقلانی داره و عقلانی داره، در اونجایی میان ابداع میکنن که تمکن ندارن. با تمکن دیگه ابداع نمیکنن. آه. حالا اون بحث روشان میشه الان این مراد شما واجبی اینو ببینید وقتی من میدم اجازه میگه اجازه بده قول اجازه بدین من وقتی که میگانم که اگر در کتاب نوشته که صیغه نگاه چیه حالا میخواد فرض مثلا تکلیف باشه انتصال باشه تکلیف نباشه تعبدی وقتی من میگانم بنصر اینه که ما بخویم بگیم نح اینجا اجرا نمیکنه وقتی تمکنه این تخصیلی هست نفس نمیادی ادعا بکنه چی رو ادعا بکنه این ادعا نفس نمیاد چون من آن روزم کتاب باز مکنم نشستی غیر نگاه انترکت چی رو ادعا بکنم چرا زدبشتی؟ چرا چون مقدر تو بکنن؟ چه نفتری داره قیوانی این احتیاط و اصل عملی اون حالت ادعاه و قوام افتیار این حکم عقلی اصداش عقلی و اغلا آمادن در این که کسروف کرد تو جامعه پیاده کردن اینی که در جامعه شده به نظر ما اینه سر این که هم از قدم گفتن بطلان عبادت و تارک تار... بطلان عبادت رو اوشند نیست اما این که نباید افتیار کرد یا باید اشتحاد یا باید تقریب در حقیقت این بوده با امکان اشتحاد و تقریب نس ادع با امکان این که من بدونم من با مثال، من بدونم کدوم لباس پاکه نفس میگه تو این نماز بخون توی این نماز بخون چه نمی که ادعایی بکنه یک دفعه من مراجعه به عبدالله نکردم مثلا در قرآن کریم بود انی و اروزن انکر که هرکه. پس گفتیم انکار معنای ازدواج شد حالا ما قوا من منها وتان زواجناتها تو شو ها پس گفتین زوجهن برای این ازدواج. حالا نمیبینی زوجه تنها یا انکار تنها هر دو احتمال هست. نقد اجازه میکنه میگه اینا حالا به حساب زوا هر دو ثرغیت دارن. واقعا یک واقعه. اینجا اشکال نداره چون ما دسترسی نداریم دل به بیا شرط جنب بکنه. هم زوجه تو بگه هم انکار تو این اشکال نداره. اینجا اشکال داره اما در جایی که اینطور نیست تو وصال عملیه نبشه یا فرضش گفت بله ما فهمیدیم از قرائن مجموعه قرائن، اونی که سریحه سریحه زبوجت انکهه به اصطلاح به عنوان ملازمه نه به عنوان سریح چون این عقل مفادش ارخه زوجیت لحظی که مفید ارخه زوجیه زبوجت نه اگر من تحمیلم خود با بگیم با شواهز که پس بنابراین من چی میگم میگم سیبه ضرور شد دیگه نیم کنم احتیاطاً انکته بگو چون اعداد نمی و این که بگیم مجرد احتمال مجرد احتمال کافیه بحث ما همینه مجرد احتمال به اعداد نفس نمی رسه. این همون نقطه سمرون شیخ میگه تکرار نکنید چون اگر به حد ادگاه رسید اونجای سینسان تمنکن ندن اون درست قابل اعتماد اگر به حد ادگاه نرسید در عبادات هم همینطوره در معاملات هم همینطوره در تهارت چون یک نقطه واقعی سرده بحث انتصال نیست اون یک نقطه واقعی خودشو داره در عبادات هم همینطوره لذاب چون بحثیت همون شد من مختصر عرض می کنم به نظر ما مهمترین ای که در باب احتیاطه صحیح وقتی بطوره بگه احوت یعنی واقعا مجموعه عدله رو نگاه کرده ادله واقعا ابهام داره او دفت بکنیم ابحام به حدی است که برای او لاعقل یک حالت ابداعی درست بکنه و الا مثلا بگیم احوت این طور از بلکه احوت این طور از بلکه هم تونتون بگیم احوت احوت احوت این جیچ داری حالا وقتی اونجا نیست و جاشم نیست در عربه اینطوره یکی از خصائص عربه یک احتیاط میار برای احوات ما اونجا هست این احتیاط هایی دلیل برش میستید این احتیاط بعدی مجرد احتمالاتی احتمال حد احتیاط نمیاره خون مخالف هم بیشن خب فرص این بنده هم دیدم. بحث سر اینه که یک مخالف اگر آمد این احوات درست کنه خب هر من نه بعد یک تقیهی در کتابش گفته خب این ابداع درست میکنه؟ این درست میکنه که اونی که درست میکنه یا روایتی یا مجموعه فتاوایی فتاوایی قریب بعد احمد یک نکتهی باید توش باشه تا مجرد خب دقیقه تا مجرد تا مجرد احتمال به ذهن بگیم احراس اینش این کارم انجام بده سؤال من این هیچ چه احتیاطیه؟ این به مستضای عمل حسنه این به مستضای اصل عملی نفس اداب میکنه خب یکنه نداری پس این سه تا میلیار ما برای احتیاط ارز کردیم یک احتیاط جمعی محتملات تو ذهن آنه قالبا احتیاط گیده و این دلیل بر حسنش نیست بلکه اگر مستضم تقرار باشی یا ترزی و, و آمیاب یا ساسه موزره نگی دریه بر حسنش نیست. دو جایی که حسن باشه به کمال انسانی باشه اون بله به حکم عقل عملی حسن اونجا یه بله اونجا یک نکته یک نقطهی لطیق حالی شدیم نگفتن آیا اگر جایی ما حس کردیم به حکم عقل عملی حسنه میتونه تقرید اونجا فتواهی به استهباب بده این که ادهه از فوقها خیلی دقیقا مثلا میگه ال احوت کذا یکی میگه بلی یستهب ب یه بحث به که اگر نکنه در این صورت دوم مطلقا یه بحث کبرهیت اینجا لمن تطریقا هست کنم موارد احتیاط رو میتونه فقیر بگه سوال به زند ما نه خیلی مشکل یعنی دقیقا فقیر باید مرد در و احوث رو یا مثلا یه ال احوث ال افزل اگر اله افضل گفت باید اصلاده بشاره باشه به حکم عقلی تنها نمیده درست بکنه نم نمیشه اصبات کرده برای هم باشه به هم درستان شد پس الان کنجا بس احتیاط به عقل نظری یک معیار داره حس در دیگه برشید احتیاط به حکم عقل عملی حسن داره فقط نکته این که به در دو اصول ما میخوره از حسنش فتای به استحبابان بده که در کار شده درست دیگه شما های قاعده ملازنه شدید خود در هم هم شو این دو سه احتیاط و مختزای عقل اصل عملی این معیارش اون دوتا نیست معیارش ابداع نشده ابداع ها حالا اون بحث دیگه این ابداع بود. نه این نه به احتیاط اوله اون احتیاط اوله چون ما هر دو رو انجام ما برای اولی بار این مرض این سرطانش دار که خوب همین میگم در سطح علمتراکنم نفس ادعا میکنه با تمکن نفس ادعا نمیکنه در پوکیه ما روش چیه اشغال اینه که با صورت تمکن نفس ادعا نمیکنه آره؟ نه ابداع که اشکال نداره ابداع رو عنوانه نه خود حکمه ابداع روی عنوانه شانه پس بنابراین من مثلا من انشاءالا روشنسه بگه یه مطلب به همچه خط که این فرلا واضح بخص زند بشین یه ذل کلامی مرهوم آهین آهینی نرکدن مرهوم استادی که مجده شیرازی و شیخ که اگر مثلا دورا من هم دهید و عمل بشه و دهید واضح همون دفعی یکی شخص درسر یه چهی در شیخ مثلا گفته اول شرط است در جلد بعدش درسته میز چیز گفته در عمل کنه انصافا فرض این گردیم مگر به عدالت فرض نمی‌کنه دیگه اون ما به هر موضوع اکتفا می‌کنیم گفتم من اون آیه بی انصافو کردم دیگه نمی‌شه اونم جو مراجعه کنم به هر حال ما معیارها رو روشن کردیم ان شاء الله تعالی یکی احتیاط نظری، یکی عقل عملی، یکی اصل عملی این احتیاط در اصل عملی باید دائما به حدی اجرا برسه نرزه نشیه و در صورت تمکن خوب دقیق کنید در صورت تمکن از اشتاظی اصلا احتیاط تکنون می کنید درسته اونجا احتیان محتملاته این که نوشتن یا مشهدت یا مخلط اصلا احتیاط نیست اون احتیان محتملاته نه به حکم عقل عملی حسن داره چی اون حسن داره که اینسان راه در راه روی بکنه اصلا به نظر من کار سفیحانه است به لغازی کم کار روز کنید کار ای. نه فی نفس حسن داره و نه نفس به حد ابداع میرسونه که بگی این کار احتیاطه پس باید به مجرد که ما احتمال بدیم این اصل عملی درست میشه خن خب بقت میکنیم به مجرد احتمال درست میشه. احتمال باید مناشه داشته باشه این احتمال بیاد بالا تا حد تنجز نرسه حد تنجز که رسید میشه حجر حد تنجز که میشه احتیاط پس ihtiyaji به حالت دنجقیه حد تنجوز کرد دیگه میشه انقوال قبل از اون میشه ابداء ابدایی که ihtiyaj اصطلاحی می‌گوییم تاکید می‌کنیم که ما بشن بگیم چون احتمال داره پس در احوال کذا ال احوال و معلومه که ما در جایی ihtiyaj با استفهام طرح می‌کنه صحیح دریناً ببینید ال احوال کجا ال یستحب کجا ال احزل کجا احزل یک جا داره احوال یک جا داره این راجب به به بحثی که در احضیات مناسب وافقه هر دا این شخص تو دفعه بقیه بحث دیگه نمیخونی چنین آقای خوی نه دیگه نمیخول.